اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد <سؤال> وعلى آل الطيبين الفاهمين المغصومين وبعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم السلام عليك يا أبا عبد الله تي منا سلام الله الليل صلى على القسائي وعلى علي بن وعلى, وعلى الله مصطفي یا و خدا که زندگیم روزی که منتصب به باب الحوارج حضرت آقا عقل قضل العرباز مالیه السلام و السلام هست همگی حاجت روا بشیم به حرمت صلوات بر محمد و آده محمد اللهم نوز قدران محمد وقت ما در قضیه آشرا دقت کنیم یکی از مسائلی که بسیار به شکل واضح دیده می شود مسئله بلایت مداری است یک جامعه که می خواهد حسینی بشود یک جامعه که می خواهد آشرای باشد یکی از اصول و پایه‌های های این جامعه ولایت مداری است در جامعه‌ای که ولایت نباشد امامت نباشد اون جامعه جامعه آشرایی نیست قرآن کریم می‌فرماید یا ایها الذین آمنو، ان صور الله ینصرکم نصر کن و یثبت اقدام ای کسانی که ایمان آوردید بدانید اگر خدا را یاری کردید خدا هم شما را یاری می و قدم هایتان را ثابت نگه می دارد این یاری دین خدا یاری خدا به معنی چیست؟ یاری خدا به معنی یاری دین خداست و یاری دین خدا نمی شود جز این که در تحت حاکمیت یک رهبر الهی و یک رهبر ربانی باشد اون که در واقعه کربلا دیده می شود حضرت آقا بالفضل العباس علیه السلام که این گود روزش هست همگی ما و شما شنیده اید. که هیچ بار نشد تا اون دن آخر که برادرش سید و سالار شهدا را به عنوان برادر خطاب کند بلکه دائم آقا و مولا خطاب میکرد این هم روحیه بلایت مداری و روحیه امامت است این ما اگر بخواهیم در هر جای از هر زمین خاکی بخواهم جامعه آشرایی تشکیل بدیم و جامعه حسینی بشود و خودمون هم حسینی بگردیم بلا مداری یکی از روکنهای این جامعه و یکی از اصول این جامعه می تواند باشد برای این اساس است که برای ما یک سلسله وظایفی را این مسئله به وجود می آورد و باید گوش زد کرد و باید هم توجه کرد که ولایت مداری بدون تهوا شدنی نیست شاید باشد در جامعه ما و شما افرادی که عشق و محبت اهل بیت را داشته باشند که هستند الحمدلله چون افرادی و همگی هستند نه تنها در بین جامعه خودمان که در بین جامعه های غیر اسلامی هم وجود دارد افراد که خاندان ایمه را دوست دارند اما آیا می شود گفت که همگی آدم های آشورایی هستند همگی پیرو رهبر ربانی هستند و جامعه ای که زندگی میکنند جامعه آشورایی و حسینی بدون شک نمیشود شود چون این چیزی گو وقتی نمی شود عیب قضیه در کجاست سر نخ قضیه در کجاست در است که تقوا پیشه نشده است. پس ولایت مداره بدون تقوا نمیشود. این روایت رو شاید همگی با شما شنیده این که ما و سلام بفرماید کون و زینا برا برای ما مایه زینت باشید افتخار باشید نه اینکه آبروی ما را خدا این بیبرید. لذا افرادی که میخواهند پیروی اهل بیت باشند، تقوا یکی از مسائل مهم است که در پیروی اهل بیت سبب زینت میشود، سبب افتخار میشود. بر این اساس مسئله پیروی از اهل بیت چند وظیفه رو بر ما استوار میسازد و مشخص میسازد اولین ای که می توان یاد کرد شناخت شایسته اهل بیت علیه و سلام هست. ما تا زمانی که اهل بیت رو نشناسیم نمیتوانیم از حضراتشان پیروی کنیم نمیتوانیم ولایت مدار بشیم. اتفاقا در روایت هم داریم می‌فرماید شما کلام ما خاندان اسمت و تهارت رو به مردم بازگو کنید وقتی مردم سخن ما را بشنوند ل بعونا وقت مردم زیبایی های کلام ما را میشنوند از ما اطاعت میکنند بر این اساس اگر گاه جامعه ما دوچار مشکل میشن، این معنیش این است که سخنان اهل بیت علیه السلام به اینها کم رسیده است و ایلا لطبعونا داریم هر آینه پیروی میکنند کی میخواهند به عزت و به آبرو باشد هیچ کسی چون این چیزی نمیخواهد کی میخواهد ضعیف باشد هیچ کسی چون این چیزی نمیخواهد حتی همه افرادی که دوچار مشکلات اخلاقی هستند خود را تلقین کردن که روحیه شجاعت درش وجود دارد در, در حالی است که شجاعت به اون معنی که آنها میگوین نیست چون شجاعت واقعی به آنها معرفی نشده است لذا در این قسمت دچار مشکل میشه در جاهای دیگه هم همینطوره جامعه که میخواهد ولایت مدار باشد اولین وظیفه این است که باید اهل بیت را به گونه شایسته شناخت. وقت اهل بیت را بشناسیم بدون شک وابسته و شیفته شیفته آنها خواهیم شد. دومین مسئله ای که در اینجا مطرح است شناخت سخنان و کلمات حضرات هست در اینجا یک مسئله را برای افراد حوزوی باید یاد کرد و یک مسئله دیگه برای همگان خش یاد کنیم اونچه که برای حوزویان یاد کرد این است که باید علوم حوزوی را تا آنجای پیش رفت که حد اقل اجازه نقل روایت را به دست آورد چرا؟ چون همگی ما و شما می دانیم که متاسفانه بر اثر کارکرده دشمنان روایات نادرست هم در جمع روایات وارد شده است بر این اساس که میتواند روایات درست را رو تشخیص دهد و سخنان اهل بیت علیهم الصلاۃ و سلام را بشناسد این وظیفه فرهختگان و روحانیان و حوزویان هست که روایات درست را رو از نادرست تشخیص کند تاریخ درست را از نادرست تشخیص کند در اون مجلس یادم هست یاد آوری میشد می گفت وقت روزه می خانید روزه درست بخانید روزه نخوانید که سبب ریزی برای خاندان اهل بیت علیهم الصلاه و سلام بشود در ماه مبارک رمضان روزه خوانده می شود که حضرت زینب آمد برادرانش حضرت امام حسن و امام حسین و السلام را از خواب بلند کرد که برادران من بلند بشوید چی خبر است در صدای میاید که امیر المؤمنین شهید شده است این معنی این روزه این است که امام حسن و امام حسین خواب بوده نزد نماز خبری بوده از نماز صبح نزد نماز شب خبری بوده هیچ خبری نبوده این روزه ها این گونه روحیه رو تلخین میکند اینجا فرهختگان است که تشخیص دهد که ماهیت یک روزه چیست حقیقت یک روزه چیست و حقیقت یک روایت چیست این بدوش فرهختگان است اما اون چه که برای همگانی ما و شما هست اونه که حوزویست و غیر حوزویست این است که مطالب ایمه علیه مصلاة و سلام و سخنان بوهربارشان را داشته باشیم و از آنها که رهبران الهیشت پیروی بکنیم سومین ای که مسئله ولایت مداری برای همگان ما و شما به عنوان وظیفه، روی بار دوش ما و شما بار میکند و میآورد. شناخت راه عملی و اقتداص. ما باید بدانیم مسیری که اهل بیت علیهم موصلاط و سلام تای میکنند چیست. حتی در جهادمون، حتی در تولا و تبر حتی در خیلی از دفترهای فرهنگی و عملی و جهادی من یکی از مسائلی که باید دقت کنیم این است که در راه و منیش خاندان ایمه علیه مصلاة و سلام دشمنی با افراد نیست دشمنی با ماهیت شرک بر خدا آدمای مشرک را کار ندارد بلکه خود شیرک را میخواهد از بین ببرد خاندان عیمه علیه ما و سلام و همچنین سید سالار من در سرزمین کربلا ببین چقدر از سپاهیان دشمن دعوت کرد هر کدام از عزیزان و بزرگان اصحاب ما علیه السلام و به میدان رزم وقتی میرود اول مردم رو دعوت می کند نقل می کند در شب هفتم یا هشتم محرم حبیب ابن مظاهر آمد به محضر مقدس محمسین علیه صلات و سلام عرضه کرد آقا جان در این نزدکه های کربلا که ظاهرا نینواست اونجا سرزمین آبادی بودن نقل می حبیب ارزه می کند در این سرزمین تعداد از اقوام من زندگی می کند. اگر اجازه دهید من بروم آنها را برای یاوری شما دعوت کنم ایمان علیه السلام اجازه می دهد حبیب ابن مظاهر می رود بین خاندان بن اسد اونجا وقت وارد می شود مسئله را مطرح می کند یکی از افراد حالا اسمش رفته است اولین کسی که به ندای حبیب پاسخ می دهد و در همونجا حدود نوود نفر آماده می شود که بیاید از امام حسین علیه و السلام حمایت کنند ولی متاسفانه جاسوسان به دشمن خبر میدهد صدها نفر آماده می شود و مانع می شود که این اصدی و اصحاب ما علیه سلام بپیوندن و حبیب ابن مظاهر خودش به تنهایی و به سختی دوباره به اصحاب ما سلام ملحق میشود در روز آشرا هم همینطور وقتی حبیب ابن مظاهر میرود خور میرود خور میرود زهیر میرود افراد دیگر میرود بار اول دعوت میکنن و مردم رو سرزنیش میکنند معنی این جمله چیست معنی این جمله این است که آنها بد شدند شاید بیتوان خوب کرد باید روحیه ولایت زنده بی شود نه اینکه افرادی که ولایت مدار نیستند بیمیرند بر این اساس کسانی که دور بر ما هست اگر بد باشند ما نباید انگیزه برطرف کردن و زدودن آنها را در ذهن به بلکه زدودن او روحیه را باید پروریش داد. از اینجاست هست که وقتی سخنان احلوبایت علیه مصالات و سلام را یاد آوری کنیم آنها هم خوب می شود پیامبر اکرم مشرکان را نکشت بلکه شرک را کشت چون که اگر مشرک کشته میشد یک نفر از مشرکان از جامعه برطرف میشد ولی شیر بود و جامعه ایمانی هم هیچ کسی اضافه نمیشد. پیامبر روحی شیر را رو از بین برد تا هم نه افراد کشته بیشود و هم مؤمن بود تولد یابد و در جامعه ایمانی یک نفر مؤمن اضافه بگرد راه عملی که اهل بیت ترسیم میکند این گونه هست ولی وقت کار به اون جای میرسد که شیر از بین نمی رود و روحیه دشمنی با اهل بیت از بین نمی رود اینکه این که سردمدار شیر از بین برود اونجا وظیفه هست که باید به با آنها مقابله کرد مسئله بعدی پیروی و اقتداست ما باید از اهل بیت حل مصلات و سلام پیروی کنیم و اقتدا کنیم که با این کار هست می شود روحی ولایت مداری رو در یک جامعه ایجاد کرد و پنجمین مسئله ای که در ولایت مداری مطرح است مسئله دفاع و حمایت هست. ما شما میدانیم. که از اصحاب و یاران ما علیه و سلام بودن و این گونه شعار می دادن هزار بار کشته بشوم زنده بشوم از نوادگان رسول خدا دفاع میکنه حضرت عباس علیه صلات و سلام وقت دست دست راستش قد شد اون شعر معروف رو زمزمم می فرماید والله این قطعتم و یمینی اینی قحامی ابدا عن دینی به خدا قسم اگر دست راستم را هم قطع کردید من همیشگی از دینم حمایت خواهم کرد ولایت مداری یک رکن از های جامعه آشرایی و ایمانیس و این مسئله با حمایت شده نیست بر این اساس است که بر تک تک ما و شماست اعمی از زن و مرد که این روحیه را رو در خانواده ها ایجاد کنیم فرزندان من را حامیان اهل بیت تربیت کنیم و خودمان از حمایت کنندگان قرار بگیریم مسئلهی ای که اینجا باید خاطر نشان کرد خوب دقت کنیم در صحرای آشرا یک بامود و هوا بوده است فعلا همچنین چیز هست ما و شما میدانیم که هر کسی دنبال این است که باید حامیانش بیشتر شود وجود با برکت فضل العباس فضل علیه الصلاة و سلام در صف یاران امام حسین علیه صلات و سلام بر دشمن خیلی سخت می گذشت چون اولفضل فضل همون نامدار بود که وقت به میدان رزم وارد میشد مردم فرار می کردن. لذا دنبال این بودند که عباس را از اصحاب یاران امام حسین بیرون کند. میگن دو تا اماننامه برای ابل و برادرانش آورده شد یکی از این اماننامه ها از طرف عبیدالله زیاد آمده بوده و یک اماننامه دیگه هم هست که توسط شمر آورده شده است در روز تاسعا و روز نهم محرم نقل میکنه شمر آمد به طرف خیمگاه امام حسین سدا زد کجاین پسران خواهر ما یعنی خواهرزادگان ما اینجا اینگونه گونه روضه می خوانند میگن ابلفضل سکوت کرد بار دوم و چند بار که صدا زد امام حسین علیه السلام متوجه شد نگاه کرد به سمت برادرش فضل فرمود برادر جان اگرچه که شیمر آدم بدیست ولی خیشان و اقوام مادریت هست برو ببین چی میگه؟ ابل فضل علیه السلام همراه برادرانش آمد و فرمود چی داری چی میگی شیمر گفت میدانه که به زودی جنگ می میشود و همگی اصحاب یاران حسین کشته خواهد شد من برای تو و برادرانت اماننامه آوردم اینجا ابل فضل العباس نراحت می شود و می لعنت خدا بر تو و بر اماننامه اد آیا من سرپرستی و بلاید مداری حسین را رها کنم و از شما نانجیبان پیروی کنم؟ ولایت مداری این است آیا من از پیروی از نواده رسول خدا سرپیچی کنم و در زیر دستان شما بدها و نانجیبان قرار بگیرم من و برادرانم در امانیم که در این کوره خاکیه بی ارزش زنده بیمانیم و فرزندان رسول خدا در امان نیستند لعنت خدا بر تو امان نام اتباه اینجا وقت شمر نمید می شود بر نگرده روحیه ولایت مداره این گونه هست و این روحیه را رو باید فعلا هم ایجاد کرد چرا؟ چون در همه زمان فعلی ما این قدر خو هست در چند زمان قبل جمهوریت مردم را چگونه سمت میدادند دادند به سوی برهنگی مردم را چگونه توسو میدادند دادند به سوی رهایی از دین و ارزش ها فعلا هم همینطوری ممکن باشه ولی ضعیف شاید هست و ما باید متوجه باشیم که در این حیاهوها ولایت رو گم نکنیم در, سرا... در شرایط سخت باید ولایت مدار باشیم که اگر این گونه بودیم می توان جامعه آشرایی رو تشکیل داد جامعه حسینی و اسلامی رو تشکیل داد و باید نگران شد و سخت است یا یحلدین آم بود این تمص الله ینصرکم و اقدامکم تبد ای کسانی کهلیمان آوردیم اگر خدا رو یاری کردیم خدا هم شما رو یاری میکند. اگر از بلایت دفاع کردیم خدا هم از ما دفاع میکنند و اگر نکردیم نمیکنند. مسئله محرم با آشررا، که به عنوان نماد شیعی مطرح هست هر اندازه که ما بر این مسئله پایدار بمانیم همه اندازه میتوانیم قویت خود رو همراه داشته باشیم و خدا یاری ایمان و اگر این مسئله را ترک کردیم به هم اندازه از بین خواهیم رفت هر اندازه استادگی کردیم خدا هم هوای مون رو قاحت داشت هر اندازه سستی کردیم همان اندازه خدا هم نگاه رحمانش و, و از ما خوان قاحت بعد هر اندازه به خاندان اهل چسبیدیم چشیدیم هم اندازه حاجت روا قائم شد هر اندازه خدای نخواسته از این خاندان دور شدیم هم اندازه ذلت دامن مون رو قاحت کرد چرا؟ چون قرآن کریم می فرماید من کان یورید العزت فلله العزة جمیح هرکه هر که دنبال عزت هست بداند عزت از آن خداوند متعال هست و اراده خداوند متعال این است که مردم باید از راه اهل و بیت و از راه پیامبر از سرط خدا بیاید و اگر مستقیم بیایم، او لیاقت را ندارن که به سمت خدا برود فقط توسط شفاعت اهل بیت برای یاری اهل بیت هست می توانند به سمت خدا بیروند. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح اللخيي حلت بفنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا باقی اللیل و النهار شب عاشورا گهبان خیمه ها عبل فضل است تا زمان که صدای پای عبل فضل میاید همه اهل خیام آرامش دارند، بچه های حسین آرامن همه میگن امو جان من ابل فضل عباس امشب نگهبان خیمه دل شب بود ابلفض نگهبان خیمه هاست دید سیاهی از دور بیاید ابلفض اون شیر مرد کربلا دست کرد به قبضه شمشیر صدا زد آی سیاهی که هستی خودت را معرفی کن و ایلا خوند خواهد رسش و مرد مگر نبیدانی این بشب نگهبان خیمه ها اول فضل است این سیاه اومد گریه کد صدا زد برادر جان خوهر زینب است صدا, صدا زد خوهر جان زینب تو دیگه در این دل شرچ میکنید زینب بر ارزکر برادر جان اول فرز شدیده این روز روز نوم محرم براید و برای برادران دامن و ابل فضل کرد مار خوه هر زینب فرمود برادر ابان باد او ای رو به یاد میاری ابان باد کرد مار زینب فرمود برادر آیا وسیعت بابای من رو به یاد میارید او که بابا فرمان عباس جانم من در کربلا نشتم خوش داری برادر دوست. ارجن هروبیاد دارند آه دل رف کنار دشش زن رو بگرد کرد هی دارد همه با خود میگوید خدا به شرمندشون با این مرا پیش دارم زینب آمد کنار برادر صدا زده بر ندانم که امون امان آمر میکنی رد می آخر تو شیر مرد کربل آمین صبح آشورا یکی یکی میدان رفتم قل میکنن شاید زبان است، عباس به برادرانش کرد فاز مادرش هست صدا میزنن برادرانم و پیش به بین که من افتادن شما را در میکنم فرزند پیابر مشاهده کنن. تا در سرای فرد سفید روما ملاقات کنی، اول فدال شیر مرد کرد. هر تا قدم تا با هیچ کسیم خدا حفظی نکر با حقیمه ها خدا حفظی نکر با بچه ها خدا حفظی نکر به همه میگوست میره می و می روح آره. اما حسین بیدانه دیگره باستش برطبی گرده از در این بیتابی نگاه به اول پسنش گردن هر صدا می جون چرا؟ آزادان بیگردن، آگاهتر <مترجم> هن کبر جد گرد دست را کرده تو درد به همین که دشمن دست و فرد نشد درد هم گروه ایدارت تلاش آه خدا را بید در وقت سفتی نهار امیدی نو چقدر کمر آدم را سوست و دانج سدادرنگ ونش غو ها به فال صدا یا خدا دریا قوم همین رنگ روانی رفت رفت خمشت رو برداشت نگاه کردن دیدم دست عوالفر حسین پیش رفت بازم پاین شد دیدم دست خودش رو به जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण باراد گو رو انا <تصفيق> غادي وقراد رسلنا اصدق سرسا اخترس على لعنة الله على القرن الظالمين سيعلم الذين ظلموا يا محمد يا امين يا علي يا محسن الحسن يا اللهم دحرت سعة من من دري الدهسان إلآه خير كردار دورہ اونجہ درو فرمان ای الہی فلک تاں جی دورے دورے موں دے کرمت رب مجلس الله مارا توجد و داری و عناه کرد. الله من شدن در بهرشانه شهداي كربلا رحم الله من كرى سوره مباركه تلوده مع الاخلاص والصبر